إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَيِّ يُفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِهِمْ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِهِمْ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَيِّ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا همانا کسانی که به خدا و پیام برانش کفر میورزند و میخواهند میان خدا و پیام جدایی جدای و میگویند به بعضی ایمان میآورین و بعضی را انکار می‌کنیم میکنیم و میخواهند بین این و آن راهی برای خود برگزینند. اولئک هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا آنها در حقیقت کافرند و برای کافران عذاب خار ای آماده کرده ایم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ منهم أُولَائِكَ اولَائِكَ ثَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا و کسانی که به خدا و پیامبرانش برانش ایمان آورده و میان هیچیک از آنان جدائی نیفکندند اینان خداوند به زودی پاداششان را خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان است. یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا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 فبِمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ وَقَتْلَهُمْ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 پس جز اده کمی ایمان نمی آورند و بی کفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وان الذين احتلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع وما قتلوه يقينا بنيز خاطر این گفتهشان که ما مسیح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 او را نکشتند. بر وفعه الله الیه وكان الله عزیزا حكیما بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند پیروزمند حكیم است وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة يكون علهم شهیدا و كسی از اهل كتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگش به او ایمان میآورد و عیسی روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود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 چیزهای پاکیزه ای را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم و اخذهم الربا وقدنه عنه واكلهم اموالا الناس بالباطل واعذبنا للكافرين منهم عذابا علیماً. و نیز به سبب ربا گرفتنشان در حالی که از آن نهی شده بودند و نیز به سبب آنکه اموال مردم را به ناحق میخورند و ما برای کافرانشان عذاب دردناکی آماده کردیم لكن الراس خونت العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك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 إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان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 زبور دادیم ورسلا قد قصصناهم علیك من قبل ورسلا لم نقصصهم علیك وكلم الله موسی تكلیما و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو بیان کردیم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت مبشرين و منذرین لالا یکون لن علی الله حجته بعد الرسل و کان الله عذیزا حکیم پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم برخدا حجتی نباشد و خداوند پیروزمند حکیم است لكن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کف بالله شهیدا لیکن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 و مردم را از راه خدا باز داشتند، محققا در گمراهی دوری گرفتار شده اند. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا آنان که کافر شدند و ستم کردند، خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید، و آنها را به راهی هدایت نخواهد کرد الا طریق جهنم مخالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله يثيرا. مگر راه جهنم که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار بر خداوند آسان است يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وان تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اي مردم بيغمان پيامبر با آين حق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 لن يستنك فالمسیح أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً مسیح هرگز آباد ندارد که بنیه خدا باشد. و نفرشتگان مقرب عبادارند و هر از بندگی او سرباز زند و تکبر کند به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود محشور خواهد کرد. فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ و اما الَّذِينَ استَنْكَفُوا وَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الیما ولا, يجدون لهم وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اما آنان ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پاداشهایشان را به طور کامل خواهد داد و از فضل خیش بر آنها خواهد افزود و اما آنان که ابا کردند و تکبر ورزیدند آنان را به عذابی دردناک عذاب می‌کند و برای خود غیر از خدا دوست و یاوری نخواهند یافت یا ایوهن ناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا و انزلنا ایلیکم نورا مبینا ای مردم همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد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 وَإِنْ اَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْف مَا تَرَكْ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ تَثْمَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُلُفَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِن كَانُوا و اخوات الرجال و النساء فللذكر مثل حظ الان يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم است فتوا میخواهند بگو خداوند در کلال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 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان یا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود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 لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا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 فمن اضطر و فی مخلصت غیر متجانف لإثم فإن الله غفور گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام زبه نام غیر خدا بران برده شود و هیوانات خفه شده و بازر مرده و از بلندی افتاده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 مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورد، پس بداند که خداوند آمرزندی مهربان است. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَازْكُرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْهِ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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين مفصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان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 و او در آخرت از یانکاران خواهد بود. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق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 وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاء قَالَ لَكُمْ كِتَابٌ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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم ولكن يريد, ليطهركم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آورده ای اید چون به نماز برخواستید، پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مصح کنید و پاهایتان را تا دو گوزک بشویید و اگر جنوب بودید، پس خود را پاک سازید و گسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده، یا بازنان تماس گرفته و آمیزش کرده باشید، آنگاه آب نیابید، پس با خاک پاکی تیمم کنید. و از آن بر صورتتان و دستهایتان بکشید، خداوند نمیخواهد بر شما دشواری قرار دهد، بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند باشد. و نعمة نعمت الله عليكم و میثاقه الذی واسقكم بهی اذ قلتم سمعنا و اطعنا و الله إن الله عليم بذات الصدور و بیاد آورید نعمت خدا را بخیش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 أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقفط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله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 همانا خداوند به آنچه میکنید آگاه است. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و عظیم. خداوند به آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند بعد آموزش و پاداش بزرگی داده است. وَالَّذِينَ كفروا وكذبوا بِ اولئك اصحاب أَصْحَابُ الْجَحِيمِ و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تگذیب کردند آنان اهل دوزخند يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ همم قوم اذ همم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 لَإِنَّ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الَّا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ لا عَنكُم عنكم سيئاتكم ولا أدخلنّكم جنات ولا أدخلنّكم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 مسلما از راه راست منحرف ردده است فَبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 بزودی آنها را از آنچه انجام می دادند. آگاه خواهد ساخت یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم کثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ای اهل کتاب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 به راه های سلامت هدایت می کند و به فرمان خود آنها را از تاریکی به سوی روشنایی می برد و آنها را به راه راست هدایت می کند. لقد كفر الذین قالوا این الله هو المسیح بن مریم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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من, من خلق یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بینهما وإلیه المصیر یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب میکند بلکه شما هم بشری هستید از آنچه آفریده است هر کس را بخواهد میامرزد و هر کس را بخواهد عذاب میکند و فرمان روایی آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست و بازگشت همه به سوی اوست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 نبشارت دهنده به سوی ما آمد و نبیم دهنده ای. پس به تحقیق اینک پیام بر بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمده است، و خداوند بر همه چیز تواناست.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 که بهیچ یک از جهان یا نداهد بود. يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتد على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اي قوم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 وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فن یخرجوا منها فنا داخلون گفتند ای موسی بیگمان در آنجا قومی زورمند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمیشویم تا آنها از آن بیرون شوند پس اگر آنها از آن بیرون شوند قطعاً ما وارد خواهیم شد قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم دخول عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين دو تن از مردانی که از خدا میترسیدند و خداوند به آنها نعمت ارزانی داشته بود گفتند شما از دروازه برانند پس هنگامی که وارد شدید قطعا شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون بنی اسرائيل گفتند موسى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 اربابدارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیفکن قالتا انها محرمه علیهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين خداوند فرمود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 وَاتْلُ عَلَيْهِمَّ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ به ای پیام بره ما داستان دو آدم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 زیرا من از الله پروردگار جهانیان می ترسم اینی ارید انت بوع اسم اسمی و اسم فتكون من أصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. من میخواهم که تو با گناه من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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين آنگاه خداوند کلاقی را فرستاد که در زمین جستجو میکرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند او گفت وای بر من آیا من آنقدر درمانده‌ام هم که همچون این کلاق باشم و جسد برادرم را بپوشانم و سرانجام پشیمان شد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 إنا سجميع ومن أحياها فكأنما أحينا سجميع ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون به من سبب.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 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أیديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم سزای كسانیكه با خدا و يامبرش میجنگاند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 اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید توبه کنند پس بدانید که همانا خداوند آمرزندی مهربان است یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا ابتغووا الیه وجاهدوا و في سبیله لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده از خدا بترسید و به سوی او تقرب جوئید و در راه او جهاد کنید باشد که راستگار شوید این الذين كفروا لو له ان لهم ما في الْأَرْضِ جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم الْقِيَامَةِ ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.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 یریدون این یخرجون من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم از آتش جهنم بیرون شوند ولی نمی از آن بیرون شوند و برای آنها عذابی پایدار است والسارق السارق فقطعوا السارقت فقطعو جزاء بما كسبا کالم من الله والله عزيز عزیز حکیم قصد مرد دوزد و زن دوزد را به سزای عملی که مرتکب شده اند به عنوان یک عقوبتی از جانب خدا قطع کنید و خداوند نیرومند حکیم است و من تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم پس هر کس که بعد از گناه و ستمش توبه کند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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يَشَاءُ و يوفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا نمی‌دانی که فرمان روائی آسمانها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد میبخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است؟ یا ایوها الرسول لا يحزن کالذین يسارعون في الكفر من الذین قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه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 هرگز در برابر خداوند برای او اختیار نداری آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است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 با ادالت در میان آنها داوری کن یقینا خدابند عادلان را دوست دارد و کیف يحکمونك و عندهم التورات فيها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك و أولئك بالمؤمنين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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَوُ بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْفُن بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت پیامبرانی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند بر اساس آن برای یهود حکمی میکردند و همچنین خدا پرستان و دانشمندان که حفاظت و پاسداری کتاب خدا به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند به آن حکمی میکردند. پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و هر کس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 و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می باشد، و زخمها را قصاص است، پس هرکس که از آن درگذرد و ببخشد آن کفاری گناهان اوست، و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده است، حق نکند ستمگر است،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 که تصدیق کننده تورات پیش از او بود و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود و يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 و من احسن من الله حکما لقومی یوقنون آیا آنها حکم جاهلیت را میخواهند؟ چه کسی بهتر از خداوند برای گروهی که یقین دارند حکمی کند؟ یه yeah.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 ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی برنگزینید آنان دوستانی یکدیگرند و کسانی که از شما با آنها دوستی کنند از آنها هستند همانا خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی و ترالذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أثر في أفسهم نادمين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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ایمان آورده اند آیا اینها همان کسانی هستند؟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 فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِطَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِذَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم تلائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم ای کسانی که ایمان آبرده اید هر کس از شما که از دین خود برگردد به خدا زیانی نمیرساند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 شایشگر داناست انما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون یار و ولی شما تنها خداست و پیامبرش و آنها كه ایمان آبرده اند. همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را می‌دهند او من الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون و هر کس خداوند و پیام بر او و کسانی که ایمان آورده اند را دوست بدارد او از حزب خداست آیا قینان حزب خدا پیروز است؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل بگو آيا شما را خبر بدهم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 و اذا جاؤوكم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجوا به و الله اعلم بما كانوا يكتمون و چون نزد شما می آیند می ایمان آورده این حال آنکه با کفر وارد شدند و با کفر خارج گشتند و خداوند به آنچه کتمان می کنند آگاه ترست. و ترا کثیران منهم یسارعون في الاسم والعدوان و السحت لبئس ما كانوا يعملون و بسیاری از آنها را میبینی بینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب می کنند چه بد است عملی که انجام می دهند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 وقالت اليهود يد الله غُلَّتْ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما لا إليك من ربك طغيان وتكفر، وألقينا بينهم العداء وتولبضاؤه، أ إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفعها الله ویسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدین و یهود گفتند دست خدا بسته است دستهایشان بسته باد و بهخاطر آنچه گفتند لعنت شدند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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم فاگر أهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند یقینا گناهانشان را خواهیم زدود وآنها را به باغهای پر نعمت وارد خواهیم كرد ولو أنهم أقاموا التورات والإنجیل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده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 آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر این کار نکنی به سالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ میکند کند همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند قل یا اهل الكتاب لستم على شیء حتی تقیم التوراه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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم اناس كساني که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی هستند و آن و نصارا هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد نه ده بر آنها خواهد بود و نه آنان اندوهگین گین شدند لقد اخذنا می و ارسلنا إليهم رسولا كل جاءهم رسولا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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فعموا وصموا, فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ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 اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ مِنْ آنها گفتند خداوند همان مسیح پسر مریم است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 آیا به سوی خدا باز نمی گردند و از او طلب آموزش نمی کنند و خداوند آمرزندی مهربان است؟ من المسیح بن مریم إلا رسول قد خلت من قبله رسول و امه صدیقه. و امه صدیقتم کانا یأکلان الطعام انظر كيف نبین لهم الآیات ثم أن انما یعفکون مسیح پسر مریم فرستادهی بیش نیست که پیش از او نیز فرستادگان دیگری بودند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 ای قوم قد ضلوا من قبل كثيرا وضلوا عن اهل کتاب در دين خود بناحق قلو نكنيد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 آنها از کار زشتی که انجام میدادند دادند یک دیگر را نه نمیکردند کردند قطعاً بد کاری انجام میدادند. هم خالدون. بسیاری از آنها را میبینی كه با کافران دوستی کنند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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أضربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بان منهم فيثسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون بيقين دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشکن خواهی یافت و نزدیک ترین دوستان به مؤمنان را کسانی می که میگویند ما نسارا هستیم